این مرگ بر امریکایی که مردم ما ما گوین این مثل همون عوض بالله منش شیطان الرجیم است که در اول هر سوره قرآن که شما می خواهید قبل از بسم الله عوض بالله من شیطان الرجیم می گید برای چیست؟ برای این که انسان مؤمن یک لحظه حضور شیطان را فراموش نکنه یک لحظه از یاد نبرد که شیطان آماده حمله به او و انهدام حصار معنوی و ایمانی اوست این مکبر آمریکام برای همینه